خبر ولایت جبرائیل بن یحیا بر خراسان. پس چون ابو جعفر بو مسلم را بکشت مردی را بیرون کرد نامش جبرائیل بن یحیا و از سرهنگان مبارز و بزرگ بود و او را به خوراسان فرستاد چون جبرائیل به خراسان آمد همه خراسان او راست بیستاد. پس از آنجا آهنگ سمرقند و بخارا کرد به فرمان ابو جعفر و در خراسان خلیفت بنشاند و برفت و ازم بخارا کرد. پس همه شهر پیش او باز آمدند و همه شهر او را متیه شدند. پس در بخارا خلیفت بنشاند نامش عبد پس از آنجا برفت و بدر سمرقند آمد و سمرقند آن روز در دست مقنه آمده بود که ملک سغد بود چون ملک بنی امیه بشورید این مقنه خاقان به حیلت ملک سمرقند فرو گرفت چون جبرائیل بن یحیا به در سمرقند رسید امیر مردی بود نامش مقنه از قبل خاقان ملک سغد با سپاه بسیار و حرب ایستاد. و شهر دو گروه شدند گروهی بر هوای خاقان مقنه و گروه هوای جبرائیل بن یحیا پس حرف کردند و هر که از مخالف او بودند از سوژیان و ترکان همه بگریختند و ملک سوژ مقنه چون بشنید که جبرائیل بن یحیا بس سمرقند آمد و سمرقند بگرفت لشکر گرد کرد. وز سمرقند بسیار پیش او رفته بودند. همه با او جمع آمدند و لشکری بیندازه از اهل سوغت و ترکان و سپیر که قو می بودند از ترکان که بدین اسم معروف بودند پس مردی را برایشان امیر کرد و به سمرقند فرستاد چون به نزدیک سمرقند رسیدند بر در سمرقند فرود آمدند پس جبرائیل بن یحیی با لشکر از سمرقند بیرون آمد و بر کناره سمرقند لشکر فرود آورد و حرب کردند با سودیان. سپهدار مقنع به هزیمت شد و از ترکان و سپید جامگان بسیار بکشتند و جبرائیل هم آن جا به ایستاد. و خبر به بمقنع شد. مردی بیرون کرد خون خاره نام او خارجه و ده هزار مرد بدو داد و با سمت فرستاد و به حصار گرفت. جبرائیل از خراسان مدد خواست. امیر خراسان سرهنگ را بیرون کرد نام آن سرهنگ عقباب بن مستمل ازادی. با هفت هزار مرد گزیده و او را گفت با حرب مقنع شو بکش پس اقبه بیامد و دهی نام آن ده باغ مور خبر با مقنع رفت فیروز را بیرون کرد با اقبه برا, برا و حرب کردند اقبه حمله آورد با یاران خیش و مر دشمن را به هزیمت کرد و خلقی را بکشتند از ترکان و سپید جامگان. پس حقبه آهنگی کش کرد. مقنه نام کرد به بخارجه و مر او را از سمرقند باز خواند. پس... این خارج حیلت ساخت و پی که آمد سوی و نامه بدو داد. گفت این نام از کی آوردی؟ گفت از نامونده قان حجدان نامه را برخاند. اندر نامه نوشته بود که ایوه الامیر شنیدم که خدایی مر تو را نصرت داد بر دشمن و بسیار شکر کردم. بدان که خارج جبرائیل را بشکست و سپاه او بسیار بکشت و سمرقند غارت کرد و روی به تو نهاد. اقبه گمان برد که این حدیث راست است و از این هیچ چیز نبود پس روی باز پس نهاد و ترکان از پس وی برفتند و غارت کردند و خزانه او بگرفتند و اقبه به بلخ شد و نامکلت به امیر خراسان از بلخ به مرو و از حال او را آگاه کرد